واقع قضیه اینه که تمدن‌های بشری و پیشرفتهای مادی عالم در همه دوره و همچنین پیشرفت معنوی و روحی و درونی هر انسان جز با کار فراهم شدنی نیست کار لازمه تلاش لازمه و علیسا للانسان الا مساع این آیه کریمه بود که قاری خوش امروز ما برامون خوندن و علیسا للانسان الا مساع دستاورد شما تنها در سایه سعی شماست تلاش شماست یعنی کار شما در هر سطحی باید این رو فکر کنیم باید کار کنیم